مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد و پینجاه و یافتن مورید مراد را و ملاقات او با شیخ نزدیک آن بیشه اندرین بود او که شیخ نامدار زود پیش افتاد بر شیر سوار شیر قرآن حیزمش را می کشید بر سر حیزم نشسته آن سعید تازیانش مار نر بود از شرف مار را بگرفته چون خرزن کف. تو یقین میدان، که هر شیخی که هست هم سواری می کند بر شیر مست گرچه آن محسوس و این محسوس نیست لیک آن بر چشم جان ملبوس نیست صد هزاران شیر زیر رانشان پیش دیده غیب دان هیزم کشان لیک یک یک را خدا محسوس کرد تا که بیند نیز او که نیست مرد دیدش از دورو بخندید آن خدیو گفت آن را مشنو ای مفتون زدیو از زمیر او بدانست آن جلیل همز نور دل بله نیم دلیل خاند بروی یک به یک آن زوفنون، فنون آن آنچه در ره رفت بروی تا کنون بعد از آن در مشکل انکار زن برگشاد آن خوش سراینده دهن کن تحمل از هوای نفس نیست آن خیال نفس توست آنجا معنی گر نه میکشیدی می کشیدی بار زن، کی کشیدی شیر نر بیگار من. اشتران بختیم اندر سبق، مست و بی خود زیر محمل حق. من نییم در امر و فرمان نیم خام، تا بی من از تشنیع آم، آم ما و خاص ما فرمان اوست جان ما بر رو دوان جویان اوست فردی ما جفتی ما نز هواست جان ما چون مهره در دست خداست ناز آن ابله کشیم و چو او ناز اشق رنگو. نه سودای بو، اینقدر خود درس شاگردان ماست، کر و فر ملحمه ما تا کجاست؟ تا کجا؟ آنجا که جا را راه نیست، جسنا برق مه الله نیست. از همه اوها متصویرات دور نور نور نور نور نور, نور. بهرتو گرپست کردم گفت کردم گفتگو تا بسازی با رفیق زشت خو تا کشی خندان و خوش بار هراج از په از صبر مفتاح الفرج چون بسازی با خسی این خسان گردی اندر نور سنتها ها رسان کنبیا رنج خسان بس دیدند از چنین ماران بس پیچیدند چون مراد و حکم یزدان غفور بود در قدمت تجلی و ظهور، بیز زد زد را نتوان نمود، به بمثل را زد نبود. حکمت در اینی جایلون فی الارز پس خلیفه ساخت صاحب سینه تا بود شاهیش را آینه پس صفای بی حدودش داد او وانگه از ظلمت زدش بنهاد او دو علم بر ساخت اسپید و سیاه آن یکی آدم دگر ابلیس را در میان آن دو لشکرگاه زفت چالش و پیکار آنچه رفت رفت همچنان دور دوم حابیل شد زد نور پاک او قابیل شد همچنان این دو علم از عدل و جور تا به نمرود آمد اندر دور دور زد ابراهیم گشت و خسم او، وان دلش کینگزار و جنگ جو. چون درازی جنگ آمد ناخوشش، فیصل آن هر دو آمد آتشش. پس حکم کرد آتش را و نوکر تا شود حل مشکل آن دو نفر. دور دور و قرن قرن این دو فریق تا به فرعون و به موسای شفیق سالها اندر میانشان حرب بود چون زهد رفت و ملولی میفزود آب دریا را حکم سازید حق تا که ماند که برد زیندو سبق همچنان تا دور و تور مستفا با عبو آن سپهدار جفا. هم نکر سازید از بحر سمود، سیحه که جانشان را در را بود. هم نکر سازید بحر قوم آد، زود تیز تیزرو یعنی که باد، هم نوکار سازید بر قارون زکین در حلیمی این زمین پوشید کین تا حلیمی زمین شد جمله قهر برد قارون را و گنجش را به قهر لقمه را که ستون این تن است دفع تیغ جو نان چون جوشن است چونکه حق قهره نهد در نان تو چون خناق آنان بگیرد در گلو این لباسی که ز سرما شد مجیر حق دهد او را مزاج زمهریر تا شود بر تند این جبه شگرف سرد همچون یخ گزنده همچو برف، تا گریزی از وشق، هم از حریر، زو پناه آری به سوی زمحریر. تو دو قله نیستی، یک قلهی، غافل از قصه عذاب ای، امر حق آمد به شهرستان و ده، خانه و دیوار را سایه مده. مانع باران مباش و آفتاب تا بدان مرسل شدند امت شتاب که بمردیم مغلب ای محتر امان باقیش از دفتر تفسیر خان چون را مار کرد آن چاست دست را عقل است آن نکته بس است تو نظر داری و لیک امآنش نیست. چشمه افسرده است و کرده ایست. زین همه گوید نگارنده فکر که بکن ای بنده امآن نظر. آن نمی خواهد که آهن کوب سرد. لیک ای پولاد بر داوود گرد. تن بمردد سوی اسرافیل ران، دل فسردت، رو به خورشید روان، در خیال از بسک گشتی مکتسی نک به صوفستایی بدزن رسی، او خود از لب خرد معزول بود، شد زهس محروم و معزول از وجود، هین سخنخا نوبت لبخایی است، گر بگویی خلق را رسوایی است. چیست ام آن؟ چشم را کردن روان، چون زتن جان رست گویندش روان. آن حکیمی را که جان از بند تن باز رست و شد روان، اندر چمن، دو لقب را او بر این هر دو نهاد، بهر فرق، ای آفرین بر جانش باد، در بیان آنکه که بر فرمان رود، گر گلی را خار خواهد، آن شود. معجزه حود علیه السلام در تخلص مؤمنان امت، با وقت نزول باد مؤمنان از دست باد زایره جمله بنشستند اندر دایره باد طوفان بود و کشتی لطف او بس چونین کشتی و طوفان دارد او پادشاه را خدا کشتی کند، تا به حرس خیش بر صفحا زند، قصد شه آن نه که خلق ایمن شوند، قصدش آنکه ملک گردد پای بند، آن خراسی میدود، قصدش خلاص تا بیابد او، ز زخم آندم مناس قصد او آن نه که آب برکشد یا که کنجد را بدان روغن کند گاو بشتابد ز بیم زخم سخت نه برای بردن گردون و رخت لیک دادش حق چونین خوف وجع تا مساله حاصل آید در تبع همچنان هر کاسب اندر دکان بهر خود کوشد نه اصلاح جهان هر یکی بردرد جویت مرهمی در تبع قایم شده زین عالمه حق ستون این جهان از ترس ساخت. هر یکی از ترس جان در کار باخت. حمد ایزد را که ترس را چونین کرد او معمار و اصلاح زمین. این همه ترسندند از نیک و بعد هیچ ترسنده نترسد خود ز خود. پس حقیقت بر همه حاکم کسیست که قریب است او اگر محسوس نیست هست او محسوس اندر مکمنه لیک محسوص حس این خانه نی آن حس که حق بر آن حس مظهر است نیست حس این جهان، آن دیگر است. حس حیوان گر بدیدی آن سوار، با یزید وقت بودی گاوخر. آن آنکه تن را مظهر هر روح کرد، و که کشتی را براق نوح کرد، گر بخواهد عین کشتی را بخوب، او کند طوفان تو ای نور جو هر دمت طوفان و کشتی ای مقل با غم و شادید کرد او متصل گر نبینی کشتی و دریا به پیش لرزهها بین در همه اجزای خیش. چون نبیند اصل ترسش را عیون ترس دارد از خیال گونگون مشت بر اعما زند یک جلف ماست کور پندارد لگت زن اشتر است زان آندم بانگ اشتر می شنید کور را گوش است آینه ندید باز گوید کور نه این سنگ بود یا مگر از قبه پرتنگ بود این نبود و او نبود و آن نبود آنکه او ترس آفرید اینها نمود ترس و لرزه باشد از غیر یقین هیچ کس از خود نترسد ای هزین آن حکیمک وهم خواند ترس را فهم کژ کرده است او این درس را هیچ وهم به حقیقت کی بود هیچ قلب به صحیحی کی رود کی دروغ قیمت دارد بیزراست در دو عالم هر دروغ از راست خواست راست را دید او رواج و فروغ بر امید آن روان کرد او دروغ ای دروغی که ز صدقت این نواست شکر نعمت گو مکن انکار راست از مفلسف گویم و سودای او یاز ها و دریاهای او بلز هاش کان پند دل است گویم از کل جز در کل داخل است هر ولی را نوه و کشتیبان شناس صحبت این خلق را توفان شناس کم گریز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزر در تلاقی روزگارت می برند یادهاشان غایبیت می چرند. چون خره تشنه خیال هر یکی از قفه تن فکر را شربت مکی نشف کرد از تو خیال آن بوشات شب که داری از بحر الحیات پس نشان نشف آب اندر غسون آن بود کان می نجنبد در رکون از شاخه تر و تازه بود، میکشی هر سو کشیده می شود گر خواهی توانی کردنش، هم توانی کرد چند بر گردنش، چون چودان ناشف ز نشف بیخ خواد، سوی که امرش میکشد، پس بخان قامو کسال لاب از نوبی چون نیابد شاخ از بیخش تبی. آتشین است این نشان، کوتاه کنم، بر فقیر و گنج و احوالش زنم. آتش دیدی که سوزد هر نهال آتش جانبین که زو سوزد خیال، نه خیال و نه حقیقت را امان زین چونین آتش که شعوله ز زجان خسم هر شیر آمد و هر روبه او کلو شه حالک الا وچه در وجوه و وچه او رو خرد چون الف در بسم در رو درج شو آن الف در بسم پنهان کرد ایست هست او در بسمو هم در بسم نیست همچنین جمله حروف گشتمات وقت حصف حرف از بحر سلات او سلست و سین زو وصل یافت وصل بی سین الف را بر چون که حرف بر بد این وسال واجب آید که کنم کوته مقال چون یکی حرف فراق سین و بیست خاموشی اینجا مهمتر واجب است چون الف از خود فنا شد مکتنف بیوسین بی او همه گویند الف مارمیت از رمیت بیوی است همچنین قال الله از سمتش بجاست تا بود دارو ندارد او عمل چونکه که شدفانی کند دفع علال. گر شود بیشه قلم دریا مدید مصنوی را نیست پایان پدید چهارچوب خشت زن تا خاک هست میدهد تقطی شعرش نیز دست چون نماند خاکو. بودش جف کند، خاک سازد بحر او چون کف کند. چون نماند بیشه و سر در کشد، از عین دریا سر کشد. بحر این گفت آن خداوند فرج، حد سو ان بحر نا ازلا هرج، بازگرد از بحر و رو در خوشگ نه. هم زلعبت گو که کودک راست به. تا زلعبت اندک اندک در سبا جانچ گردد با یم عقل آشنا. عقل از آن بازی همه یابد سبی. گرچه با عقل است در ظاهر عبی. کودک دیوانه بازی که کند جز باید تا که کل را فی کند کردن با قصه قبه و گنج نک خیال آن فقیرم بیریا آجز آورد از بیابو و از بیا بانگ او تو نشنوی من بشنوم زان که در اسرار همراز ویم طالب گنجش مبین خود گنج اوست دوست کی باشد به معنی غیر دوست سجده خود را می کند هر لحظه او سجده پیش آینه است از بهر رو گر بدیدی زاینه او یک پشیز به خیال زو نماندی هیچ چیز هم خیالاتش هم او فانی شدی دانش او محو نادانی شدی دانش دیگر ز ما سر براوردی ایان کنی انا اسجد آدم ندا آمد همه کادمید و خیش بینیدش دمی احولی از چشم ایشان دور کرد تا زمین شد عین چرخ لاج برد. لا اله گفت و الا الله گفت گشت لا علا وحدت شکفت آن حبیب و آن خلیل بارشد وقت آن آمد که گوش ما کشد سوی چشمه که دهان زینها بشو آنچه پوشیده از خلقان مگو ور بگویی خود نگردد آشکار تا به قصد کشف گردی جرم دار لیک من اینک پرایشان میتنم قایل این سامع این هم منم صورت درویش و نقش گنج کو رنج کشند گرو از رنج گو چشمه راحت برایشان شد حرام میخورند از زهر قاتل جام جام خاک ها پر کرده دامن میکشند تا کنند این چشمه ها را خشک بند کی شود این چشمه دریا مدد مکتنس زین مشت خاک نیک و بد. لیک گوید با شما من بستم به شما من تا پیوسته پیوستم قوم معکوسند اندر مشتها خاک خار و آب را کرده رها ضد طبع انبیا دارند خلق هجده ها را متکا دارند خلق چشم بند خاتم چون دانسته‌ای هیچ دانی از چه دیده بسته‌ای بر چه بگشادی بدل این دیدهها یک به یک اصل بدل دان آن تو لیک خورشید عنایت تافته است آیسان را از کرم دریافته است نرد بس نادر ز رحمت باخته عین کفران را انابت ساخته هم از این بدبختی خلق آن جواد منفجر کرده دو صد چشمه وداد غنچه را از خار سرمایه مهره را از مار پیرایه دهد از سواد شب برون آرد نهار و از کف معصر برویاند یسار آرد سازد ریگ را بهر خلیل کوه با داوود گردد هم رسیل کوه با وحشت در آن ابر ظلم برگشاید بانگ چنگ و زیر و بم خیز ای داوود از خلقان نفیر ترک آن کردی عوض از ما بگی